حق جل و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. نعوز اگر خلق قیب دان بودی کسی به حال خود از دست کس نیاسودی